مورد رستاخیست چی در آنی نظر تشت می راجع راجب معود آینده از زمان بسیار قدیم در ایران پیش از در توشت معتقد بودند که هر وقت ایران و ایرانی گرفتار ظلم و ستم و بدبختی و بیچارگی می ما امیدوار باشیم که دستی از غیب برون آید و کاری بکند و به طوری که میدانیم اشوزرتوش توش رام خودش را یکی از سوشیانت ها حساب کرد سوشیانت هم به معنی خیرخواه هم به معنی نجات دهنده است و اینه که اگر کسی بین ما بلند شد و یک حرف مفیدی زد اینو رد نکنیم و مخصوصاً صفاتی که برای ایسا اوشیانتها باشی درانه هم این فرش و کرده فرش و کرد یعنی تازه کننده فرش همون کلمه که در انگلیسی هم فرش میگیم یعنی تازه کرد هم یعنی کننده پس فرش و کرد یا فرش و کرد کلمه تلفظ صحیح یعنی اینها میان تازه کننده یعنی همیشه دین اون آینه دین گرد وخوا که و نفهمی ها و مراسم زائد و اینها روی آینه دین را میگیره و اقلاً هر هزار سال یک نفه باید بین اون اجتماع یه نفر بلند بشه و این آلودگی ها و این گرد که روی له آین دین نشسته بز